دوام. مثل همه پنجشنبه ظهر ها رسیدم خانه هنوز لباسم را عوض نکردم که ماهان در اتاقم را باز میکند و میگوید شبا بودم امان کیفم را رو میگذارم روی میز و همانطور که من تو تنم است از اتاق میروم بیرون ماهان دنبالم میآید. مامان تلفن را به گوشش و از آشپزخانه بیرون میآید. دستش را سمتم می گیرد و آن را طوری توی هوا میپیچاند که یعنی چه کار کنم؟ مات نگاهش می کنم. با لبهایش می گوید مامان ارسلان آرام میپرسم؟ چرا الان سعی زده؟ دستش را در هوا پرت می کند. این یعنی ده تا فش به من داده تا خفه شوم چون آبرویش را بردم و هیچ چیز نمیفهمم و چقدر بدبخت است که یکی از بچه هایش من خنگ هستم و آن یکی ماهان زانوهایم را خم میکنم و بی صدا می گویم خواهش میکنم مامان بگو همون فردا زنگ بزنه خودش گفته بود فردا خواهش می‌کنم برمیگردد و میرود توی آشپزخانه صدایش میآید که می گوید ببخشید خانم، پدر شبانه هنوز نایمده من خودم با شما تماس میگیرم بله، میدونم همدیگه را رو چقدر خوب میشناسن اما بدون اجازه پدرش ماهان دستم را میکشد و با هم میرویم توی اتاق من را در میآورم و مینشینم لبه تخت ماهان در را میبندد و کنارم مینشیند میگویم، نگران نباش، مامان که عصبانی نیست، خسته است باور نمی کند او هم می‌داند که مامان تلفن را که قطع کند می‌آید و نیم ساعت سر من و ماهان و زمین و زمان داد میزند. بعد هم سرش را توی دستایش می‌گیرد و های های گریه می‌کند و به ما و خودش و زندگی لعنت میفرستد. به خاطر همین آمدیم توی اتاق. قایم شده ایم تا پرعصبانیتش به پر ما نگیرد. قایم شده بودیم. ماهان را فرستاده بودم پشت میز. همین میزی که از بچگیمان همین جای اتاق مانده هرچه چه ملافه داشتیم کشیده بودم روی تخت ماهان و رو تختی را رویش صاف کرده بودم اگر مامان میفهمید ماهان این بار هم تختش را خیز کرده میکشش خودش گفته بود میکشدش چانه ماهان را گرفته بود توی دستش صورتش را نزدیک کرده بود به صورتش و گفته بود میکشمت این بار دیگه میکشمت پشت سر ماهان ایستاده بودم و صورت مامان را دیده بودم و دلم از ترس به هم خورده بود. تخت که مرتب شد به ماهان گفتم بیاید بیرون. ماشین هایش را جلوش چیدم و تا ظهر که مامان برگشت بازی کردیم. همه ی بازی هایی را که دوست داشت کردیم. فکر می کردم امروز بعد از ظهر می میرد و باید تا آن وقت خوشحال نگهش دارم. صدای باز شدن در خانه که آمد ماهان را بغل کردم و چسبیدیم به در کمود مامان در اتاق را باز کرد و داد زد باز این بوی شاش از کجا میاد هرچه منتظر میمانم مامان در را باز نمی کند صدای پاهایش را که با هرس روی زمین می کوبد می بعد صدای کیسه قرص میآید آید که با خشخش ترسناکی باز می شود و یخی که از یخساز در لیوان می ریزد صدای قورت دادنش را هم بعد از همه اینها از حفظ در سرم میشنوم و دلم به هم می خورد. همه کارهایش را بلد شدم. هزار سال است که همه این صداها را پشت سر هم شنیدهام و هر بار دلم به هم خورده بدون اینکه بدانم دارم از چه می ترسم. این بار هم مثل هزار بار پیش هیچ اتفاقی نمی افتد و تمام می شود اما ترس من از صدای پا و خشخشه کیسه تمام نمی شود ماهان مثل هر بار خودش را می به من و دستهایش را حلقه می کند دور کمرم لعنت به من که حتی عروسی کردنم هم باعث عذاب این بچه می شود می گویم، نه ترس چیزی نشده صدای حقق مامان بلند می شود می ای خدا ای خدا و گریه می کند بی خود گریه می کند اصلا به من چه هر بار سر هر چیزی که مهم نیست کوچک از یا بزرگ شلوغ بازی راه می اندازد و همه چیز را به هم می ریزد می این بار محل نگذارم و بگذارم هر چه می گریه کند اما نفس های بریده بریده ماهان که مثل همیشه بی عشق و بی صدا گریه می کند به صورت هم میخورد و گوشته های دلم را به هم فشار می دهد. دلم برای ماهان میسوزد، برای مامان هم میسوزد. سوزد. اصلا بیشتر از همه دلم برای خودم میسوزد. سوزد. دست های ماهان را از دور کمرم باز میکنم و میروم بیرون. مامان روی مبل نشسته و گریه می کند. میخواهم داد بزنم و بگویم بس کند. بگویم زندگی همه من را خراب کرده و دیگر دارد حالم را به هم می زند. اما شبانه ای دیگر آرام می چی شده مامان؟ چرا این طوری می کنی? جواب نمیدهد. ماهان ایستاده در چهارچوبه در و شانههایش هایش تکان لیوان آب را از دست مامان می گیرم و به لبهایش می میگویم با خور بخور مامان آخه چرا گریه می کنی؟ چیزی گفت بهت؟ آرام بخش خوردی؟ لیوان را پس میزند. هقهق میکند و میگوید. ها به بردی. مادرش میگه یه ساله که با هم میرین و میایین چرا اون از همه چیز خبر داره من ندارم؟ چیزی نگفته. منظرش نه که یه ساله با هم همکاریم. میخواست بگه همکارید میگفت همکارید. لازم نکرده توجی کنی. فکر کردی من خرم همیشه فکر می کنی من خرم همه فکر می من خرم بلند تر گریه می کند بغزم را قورت می دهم و میروم سمت اتاق ماهان هنوز بی و بی صدا گریه می کند نکاش می قدم تا شانه بیشتر نمی مردهای قد بلند نباید گریه کنند هیچ وقت نباید گریه کنند حتی اگر منتال ریتارت باشند یا هر کوفته دیگری مرد قدر بلند که گریه می کنند دنیا سست می شود. به تاره بند می شود و هر انگشتی می تواند آن را روی خودش آوار کند. دستم را می گذارم روی شانه بلند ماهان. می برم و می روی تخت. موهای به هم ریخته را با انگشت شانه می کنم و آرام می گویم گریه نکن. الان خودم درستش می کنم. پنج دقیقه دیگه که بیای بیرون داره می خنده. بسادگی بچگی هایش نیست. حرفم را باور نکرده. از نفسهایش که هنوز مرتب نشده و سرش که هنوز آن را بالا نیاورده پیداست. آخرین تیری را که دارم خرج میکنم. میخوای با لیلا حرف بزنی؟ نگاهم میکند و بعد با سر میگوید آره. شماره لیلا را میگیرم و موبایل را دستش میدم. میایم بیرون و در را میبندم. مامان اشکایش را پاک می کند و میگوید. این چه از درآوردی. خوشی به این زندگی کوفتی ما نیمده؟ چرا مثل آدم جوابشونو نمیدی؟ سرم را می پایین. می ترسم از جواب دادن؟ می ترسم دهانم را باز کنم و بگویم آره. بعد در سلام بیاید و عقد کنی ما از فردایش مادرش حیولا شود و با چنگک و شنل سیاه بیاید پیشمان بماند و هیچ وقت نرود. خودشم از روز بیاید مرا کتک بزند و نگذارد دیگر ماهان را ببینم. بعد هم مامان ماهان را از خانه بیرون کند و من نباشم به دادش برسم و سرگردان در کوچه ها گریه کند و گدا شود و آخرش با لباس پاره از سرما و گرسنگی گوشه خیابان بمیرد. کاش بابا نگفته بود خودت میدانی. کاش لیلا، روجا یا حتی ماهان چیزی میگفتند. من بلد نیستم تنهایی تصمیم بگیرم کاش الان ده روز دیگر بود ده ماه دیگر ده سال دیگر اون وقت این روزهای سخت گذشته بود و تکلیف همه چیز معلوم شده بود میگویم تو باید کنار من باشی مامان باید بهم کمک کنی اگه قرار باشه اینطوری به هم بریزی که من نمیتونم با خیال راحت تصمیم بگیرم تو که به حرف من گوش نمیدی هیشکی به حرف من گوش نمیده من گوش میدم تو فقط خودتو بی خودی عذیت نکن نگاهم میکند میگویم بعدشم خودشون گفتم فردا زنگ میزنن میخواستن همون فرد زنگ بزنن از جا در میرود امروز تا فردا آسمون به زمین میرسه فردا هم همین گوهیه که امروز هست اصلا بگو و همه رو راحت کن بلند می شود و می روید سر کیسه یه قرص ها اصلا به من چه؟ خودت میدونی بابات تحملم تمام می شود بس کن دیگه مامان داد نزن انقد ماهان میترسه. ماهان ماهان اون چی میفهم ترس چیه؟ بغزم را قرت می دهم من دیگر نباید گریه کنم وقتی همه چیز تقصیر من است برمیگردم گردم توی اتاق ماهان موبایل را به گوشش چسبانده و میخندد. معلوم از صدای مامان را نشنیده. مرا که میبیند سرش را بالا میآورد. میگویم دیزی گفتم دیگه عصبانی نیست. نیست؟ نه نیست. گوشی رو میدی به من؟ سلام میکنم. لیلا با خنده میگوید باز چی شده؟ چند وقت مامان دوباره حالش خوب نیست؟ مامان ارسلان زنگ زده بود برای جواب گفتم بذاریم برای فردا مامان به هم ریخت چقدر معطل می کنی شوانه بجم تا رو رفته عروسی بگیری ترسیدم هنوزم می ترسم ای فکر می کنم به ماهان به حال مامان که خوب نیست درد سرای عروسی بعدم نمیدونم اینقدری که که رو دوست دارم بسه یا نه وقتی اومده اینجا برای بار صدم در حرف میزنیم که میای میایی زود اومدم خونه که لباس عوض کنم و بیام اما تا این طوری شد حالا هم بابا نیست که مواظب به ماهان باشه وقتی اومد راه میافتم سمیرا اومده پروازش آخر شبه هر وقت میاد ایران تا جایی که بتونه احواز میمونه من همه خریدار کردم اما میترسم از قضا پختن بیشتر از یه ساله که این همه مهمون نتشته. نگران نباش میام و با هم همه کارا رو میکنیم دستپخت خوب ترمودینامیک نیست که از یاد آدم بره باید زودتر بروم تا لیلا نگران نشود تازه چند وقت است که خوب شده آنقدر خوب شده که باز میتواند مثل وقتی که میستاخ بود مهمانی بدهد آخر هر هفته در خانهشان دور هم جمع میشدیم و تا صبح حرف میزدیم ماهان را که میخواباندم مهمانی شروع میشد لیلا پیانو میزد، میساق داستان میخواند رجا همه من را میخنداند و با میساق نقشههای بزرگ دکتر شدن و استاد شدن و از این اینجور چیزها میکشید. خانه لیلا خانه آرزوهایم بود، خانه ای که مردش مثل میساق همه چیز را میفهمد. هیچ وقت عصبانی نمیشود، نمی نمیدهد، حرفهای احمقانه نمیزند، زور نمیگوید و همش موازه به زنش است. ماهان در خودش مچاله شده و گوشه ناخونش را می جود. به ناخونهای جویده شده و کج و خودم نگاه می‌کنم، و این بار دیگر بهش نمی‌گویم دستش را از دهانش در بیاورد می هر طور که بلد از خودش را آرام کند صدایش می کنم. دستش را پشتش قایم می کند و با نگرانی ظلمی میزند به من می‌خندم تا فکر نکند میخواهم به خاطر ناخون جویدن دعوایش کنم می‌پرسم. تو میدونی بابا که میاد؟ نه رفته برای مامان دوا بخره میوه هم بخره هرچی گفتم منو نبرد. کاش بابا بود اگر بابا خانه بود یک چیزی میگفت و همه چیز تمام میشد به مامان میگفت بس کند و به من میگفت چیزی نشده که خودتو نگران میکنی کار هر روزشه چشم به هم بزنی خوب میشه برو بیرون برای خودت یه چرخی بزن سر حال بیای کاش بابا سو بیاید دلم نمیآید ماهان را با مامان تنها بگذارم موبایلم چشمک می زند ارسلان دوباره زنگ زده و نشنیدم از شانس مزخرف من است حتما همان وقتی زنگ زده که ماهان داشته با لیلا حرف میزده. کاش باور کند از قصد نبوده که جواب نداده اما باز دعوا راه نیندازد کاش میشد به هیچ زنگ نزنم. زنگ نمیزدم و میگفتم همینی که هست. نمیخواستم زنگ بزنم حرفیه. ماهان روی تخت دراز کشیده و تن تنش را فرق میزند. مینشینم روی صندلی و شماره ارسلان را میگیرم. چیزی در دلم خودش را به در و دیوار میکوبد کاش جواب ندهد کاش نباشد کاش میشد همین حالا تلفن را قطع کنم برمیدارد هنوز سلام نکردم که میگوید چرا جواب نمیدی شبا نه ببخشید مهانداش با موبایل من با لیلا حرف میزد چرا جواب مامونم ندادین یه وقتایی فکر میکنم میدونی من با این کارا چقدر کوچیک میشم و باز همونه را از ام تکرار میکنی تو به این کارا میخوایی چیزی به من بگی که مستقیم گفتنش برات سخته؟ من نمیخوای شبانه بدم، زشتم، بدجنسم، کسافت حروم زدم چرا مثل آدم حرف نمیزنی؟ مشکل کجاست که من اینطوری میکنی؟ تحمل این یکی را دیگر ندارم دیگر همه ی زورم تمام شده کوچک میشمم تنها و کوچک در یک دشت بزرگ پر از گرگ گم می شود و هیچ کس نیست نجاتم دهد گرگ ها حمله می کنند دستم را می بینم که پاره می شود و گرگیان را به دندانش می گیرد و فرار می کند پایم را گرگ دیگری می برد و پهلویم را گرگ بعدی بعد همه با هم گلویم را به دندان می گیرند و فشار می دهند تا خون بپاشد روی چشمایشان چانه هم زد. عشقایم دانه دانه میریزد پایین و یقیه لباسم می میکند نگاه میکنم به ماهان که هنوز دارد کتابش را ورق میزند و حواستش به من نیست بلند میشدم و رو به دیوار میستم تا عشقایم را نبیند عشق فلان میگوید من دارم میام اونجا زعی میزنم بیا پایین حرف بزنیم هرچی که هست و نیست بعد امروز معلوم شه. دیگه خسته شدم چانم را توی مشتام میگیرد تا نلرزد و با همه زورم میگویم ارسلان مگه قرار نبود فردا جواب مشکل من امروز و فردا و جواب و این زهر که میگی نیست دارم یه چیز دیگه میگم چرا گریه میکنی؟ سب که من تا نیم ساعت دیگه میرسم خواهش میکنم امروز نه فقط همین امروز گوه به این زندگی اینطوری که نمیشه حتی تو باز نمیکنی بهم بگی چت شده. پس من چه لجن به در نخوریم توی زندگی تو؟ تلفن را قطع میکند. به خودم می گویم ولش کن شبانه فقط همین یک ساعت را ولش کن چیزی نمیشود. یکی از قرص سبز لیلا را قورت میدهم و عشقایم را پاک میکنم. صدای گریه مامان از حال نمیآید. ماهان هم تن تن را روی صورتش گذاشته و خوابیده. بلند می شوم و نگاهش می کنم سینهش آرام آرام بالا و پایین می رود کتاب را برمیدارم و رویش پتو می کشم. هوا خنک شده کاش پرسیده بودم نهار خورده یا نه نکند گشنه مانده باشد چرا همیشه همه چیز با هم به هم می ریزد؟ نمیشود بدی‌ها یکی یکی بیاین تا وقت کنم تک پاره های خودم را از گوشه و کنار دشت بزرگ پر از گرد جمع کنم. می‌نشینم روی تخت. باید برای این گندی که زدم راه حلی پیدا کنم. باید زنگ بزنم و از دل ارسلان در بیاورم. نمیشود که همینطور قهر بمانیم. گناه او نیست که من دوستش ندارم. ارسلان پسر خوبی است. این را همه میگویند. اگر خوب نبود روجا میفهمید و نمیگذاشت با هم باشیم لیلا هم میفهمید. اگر بد بود هفته پیش که با مادرش آمد من بابا هم میفهمید. اما وقتی رفتن بابا گفت به نظرم آدم های محترمی هستند. خودت میدانی. پس چرا من نمیدانم؟ چرا از بودنش خوشحال نیستم چرا نمیخواهم صدایش را بشنوم چرا همان روزی که رفتیم جمشیدیه و بستنی خوردیم و گفت میخواهد با مادرش بیاید من تا بابا با بابا حرف بزند خودم را ستم به نشنیدن گفتم این روزها قرارش را رو بگذارم گفتم باشد به بابا میگویم اما نگفتم به لیلا و رجا هم نگفتم بعدشم آنقدر به خودم گفتم آن شب هیچ اتفاقی نیفتاده که کم کم باورم شد همش را در خواب دیدم. اصلا مگر خواستگاری این طوریست؟ اینقدر مسخره و بیمزه؟ نه ارسلان آن شب شنل مخمل قرمز پوشیده بود، نه من لباس پرنسسی با دامن پفتار مثل لباس زنهای کتابهای تلستایی. هر دو با لباس های کار توی ماشین نشسته بودیم و ارسلان در راه برگشت وقتی حرف میزد به جایی اینکه دستهایم را بگیرد و بخندد و مهربان باشد حتی نگاه هم هم نکرد لیلا برایم تعریف کرده بود که چطور میساق دعوتش کرده بود سفره خانه سنتی و به گارسون گفته بود وقتی غذا تمام شد به جای صورت حساب دست گل سرخ و انگشتر را بیاورد سر میز درست مثل کتابها اما ارسلان کتاب نمیخواند. توری سوالش را پرسید انگار مثلا گفته باشد مهندس مقدم نقشه هایت را چه کار کرده؟ یا مثلا ماهان را بردی کلاس نقاشی؟ توری گفت که خودش دلش میخواست، فقط خودش. معلوم است وقتی من اینقدر بی عرضه باشم همیشه طوری می شود که او میخواهد. بعد با خودم گفتم کاش شوخی کرده باشد. اما اخمش یادم میانداخت که شوخی نکرده آرزو کردم آن شب را یادش برود اما نرفت هرقدر هم که خودم را به آن راه زدم و فردایش توی شرکت را هم را کچ کردم و به بهانه نقشه سرم را کردم توی کامپیوتر باز ارسلان از همان روز منتظر جواب بود عصر که رفتم بیرون با ماشین دم در شرکت منتظرم ایستاده بود گفت چی شد ترجیح دادم یک خنگه احمق باشم اما هیچ وقت جواب سوالش را ندهم. سرم را از پنجره ماشین کردم تو و گفتم. چی؟ تازه میگی چی؟ منو مسخره کردی؟ تو معلومی که سر جای دیگه ای گرمه. وگرنه گرنه منو اینطور بازی نمیدادی. گازداد و رفت. آن شب مرا نرساند خانه. قهر کرد و فردای از شرکت نیامد. روجا گفت. خودش لوس کرده. مجبورت نمیتونه بکنه که زنش بشی، محلش نزا نتوانستم محل نگذرم که کرد، زندگیم به هم ریخت روزها نمیتوانستم کار کنم و شبها خوابم نمی برد هر جا میرفتم، صدای موبایل میشنیدم دلم همش به هم میخورد و تون تون میزد مثل وقتی شده بودم که ماهان کوچک بود و هیچی نمیفهمید و مامان هر روز دعوای من میکرد وقتهایی که من ماهان را محکم بغل می کردم و دهانش را می گرفتم تا صدای گریش در نیاید به او غذا می دادم و صبحای زود یواشکی همامش می کردم و شلوارهایش را می شستم تا مامان فکر نکند باید بفرستادش آسایشگاه آسایشگاه هایی که در آنها بچه ها را نمی شویند و در سالونهایشان دائم بوی شاش می آید. بابا سیگار میکشید و به مامان میگفت دیده که توی آسایشگاه به بچهها خواب ور میدهند تا تمام روز بخوابند و دوشنبهایی که گریه میکنند کسی به دادشان نمیرست میگفت بچهها توی آسایشگاه استود میمیرند بس که گریه میکنند میگفت هر مردی که میرود آسایشگاه بچهها بهش میگویند بابا و دستهایشان را باز میکنند تا بغلشان کند بعد گریه میکرد اینها را آرام توی اتاق خودشان به مامان میگفت اما من میشنیدم. آن وقت توی اتاق خودمان ماهان را سفت بغل می و دهانش را میگرفتم تا صدای گریهش در نیاید کسی فکر نکند باید بمیرد تا همه من راحت شویم. من میترسیدم ماهان بمیرد و دلم مثل وقتی ارسلان قهر کرده بود به هم میخورد و تون تون میزد و توی خودش می جوشید. به خودم گفتم این بار اگر آشتی کند فقط همین یک بار هرچه گفت گوش می دهم. اما آشتی نکرد. سر کار هم نیامد. ترسیدم استعفا بدهد و آن وقت آخر عمر از عذاب وجدان بیکاری او بمیرم. لیلا گفت: مردا غرور دارن. فکر کردی چند بار میتونه بیاد با تو حرف بزنه؟ بشین فکراتو بکن یا قبول کن یا روکراس بگو نمیخوای. هرچه چه فکر کردم نفهمیدم منظورش این است که قبول کنم یا روکراس بگویم نمیخواهم. روجا هم همان حرف همیشه گیر پسر بعدی نیست. فقط یکم پر روه، باید درستش کنی بعد هم گفت فکر کردی به خاطر تو از کارش میزنه؟ احمقی، داری یه جای دیگه واسه خودش عشق میکنه پسرا همه همینن، بعدن میفهمی بی خود خودتو عذیت کردی اما من میترسیدم به خاطر من کارش را ول کند میترسیدم برود و دیگر نیاید میترسیدم وقتی هر رفت دیگر هیچ کس نباشد که دوستم داشته باشد آن وقت تنهایی پیر شوم و از تاریکی بترستم و از پا درد گریه کنم و کسی نباشد مرا ببرد دکتر. وقتی نبود اصلا لازمش نداشتم لعنتش میکردم که آمده بود و کاری کرده بود که دیگر نمیتوانستم بدون او زندگی کنم یک بار او را لعنت میکردم و صد بار خودم را هم بودن ارسلام برایم سخت بود هم نبودنش آخرش شمارهش را گرفتم ده بار میخواستم قطع کنم اما نکردم زنگ که میخورد میخواستم همه دلم را بالا بیاورم اما گوشی را که برداشت و مهربان گفت سلام همه چیز یکبار آرام شد. انگار ساعتهای سخت قبلی هیچ وقت نبودند. انگار از کابوس مردن ماهان بیدار شدم. انگار توی دلم زلزله آمده بود و حالا که بند آمده جز چند تکه گچی که از دیوارهایش ریخته و قابی که روی زمین افتاده هیچ اثری از خودش باقی نگذاشته. جسد نیمه جان دختری که شبیه من بود آوارها را کنار زد و خودش را کشید بالا. خسته و خاکی بود اما هنوز نفس داشت. به گفت همین الان می بروم با بابا حرف بزنم. اما دروغ گفت. فقط میخواست ارسلان آشتی کند میروم توی حالو به اتاق مامان سرک میکشم سرش را با دستمال بسته و روی تختش خوابیده. برقه قرصهایش روی پاتختی است. و آنقدر زیاد خورده که حالا حالا بیدار نمیشود خانه کلا فهم میکند باید بروم پیش لیلا بابا سود برمیگردد برمیگردم توی اتاق و جوری آرام و بیسدار لباس میپوشم که ماها میدار نشود موبایلم را میاندازم اندازم توی کوله در را آرام می بندم و از پله میروم پایین. هوای خونک و ابری بیرون همه چیزهای بد خانه را پاک می کند انگار دان تسم که بعد از چهارده سال از زندان آزاد شده و با نقشه گنج درده دست به سمت جزیره مونت کریستو راه افتاده دوست دارم راه بروم و برای خودم قصه های خوب بسازم بند دوم کوله را هم می اندازم. حالا دختر کوچک خودم هستم که دارم از مدرسه برمیگردم خانه وقتی میرسم مامان خوش اخلاق است و مثل مامانهای توی کارتونها میخندد و بغلم میکند و میبوسدم. بعد میپرسد چه غذایی دوست دارم و همان را برایم درست میکند بعد هم مینشینیم و با هم حرف میزنیم و بازی میکنیم تا بابا بیاید کاش میدانستم بابای دخترم چه است. نه این آقای چاغ است که دارد در خانه را با کلید باز می کند نه آن مرد قد بلندی که نان خریده و دارد از کوچه رد می شود شبیه هیچ کدام اینها نیست اما شبیه ارسلان هم نیست باد می آید و رو سریم را می برد مامام بغلم کرد و گفت اگه برادرتو دوست نداشته باشی باد اونو با خودش می بره ترسیدم همیشه ترسیده هم از اینکه هر کس را دوست نداشته باشم باد بیاید و او را با خود ببرد انگار دوست داشتن سنگ می شود به پای آدم ها و سنگینشان میکند و نمیگذارد از روی زمین تکان بخورند حالا هم می ترسم ارسلان را دوست نداشته باشم و باد او را ببرد شاید از ترس باد بوده که همیشه ماهان را اینقدر دوست داشتم با اینکه همیشه گریه می کرد، بد اخلاق بود، اصاب مامان را خورد می کرد و هیچ چیز را نمی فهمید. حتی آن روزهای اول که سرخ بود و موهای سیاه داشت و گریه می کرد هم دوستش داشتم تازه با مامان از بیمارستان آمده بودند و همش بغل مامان بود یا شیر می خورد یا می خوابید هنوز نمیدانستم دانستم چشمهایش چه است؟ به مامان گفتم بده بغلش کنم س داداشت تازه خوابیده تو برو سوزی رو بغل کن سوزی رو دوست نداشتم سفت بود و یک دستش کنده شده بود و گم شده بود میخواستم ماهان را بغل کنم که نرم بود و قرمز بود و تکان میخورد. به بابا گفتم میخوام بغلش کنم مامان گفت ازیتش نکن شبانه اگه دوستش نداشته باشی باد میاد و میبردش بابا گفت دوستش داره معلومه که دوستش داره بعد گفت بنشینم چهارزانو مثل خودش روبرویش نشستم و از زوق زانوهایم را تکان تکان دادم بابا ماهان را برداشت و گذاشت توی دامنم سنگین بود و نرم بود دامنم کنار رفته بود و سرش روی زانویم بود موهایش که به پایم میخورد یخ میکردم. ماهان قوری زد و سرش را تکان داد. موهای زیاه و نرم و خیسش روی پایم سر خورد. مرمورم شد. زانویم را پس کشیدم. سرش از روی زانویم افتاد و مثل توپ روی زمین صدا کرد. ماهان جیغ کشید. تاکسی جلوی پایم بوخ میزند. گیج میشوم و چیزی نمیگویم. نگه میدارد. سوار که میشوم تازه میتوانم بگویم میدان؟ روی صندلی جلو مردی نشسته که چرت میزند. عقب کسی نیست. با خیال راحت به در پشت راننده میچسبم و ام را بغل میکنم. راننده برای هر آبری که کنار خیابان ایستاده بوغ میزند و بعد محکم میزند روی ترمز. به هر کس هم که سوار نمیشود فوش میدهد. انگار ارسلان است که پیر شده و راننده تاکسی شده و مثل حالا با همه آدمهای های توی خیابان دعوا دارد. جنگ شده. کارمان را از دست داده ایم. من صبحها میروم خانه لیلا که هنوز پول دارد کارگری. ارسلان هم پراید سبز کثیفش را که اوراغ شده سوار می شود و میرود مسافر خودم را بیشتر به در می و کوله را محکم تر بقل میکنم راننده بوغ میزند و ترمز میکند، در باز میشود و زنی کیف و ساک گنده ای را روی صندلی میگذارد و خودش سوار میشود، راننده غوری میزند و هنوز زن در را نبسته که راه میفتد، کیف زن را میکشم سمت خودم تا برای نشستنش جا باز شود، تشکر میکند، نگاه میکنم به صورتش که شل و بی حال است و انگار گریه کرده، مثل مامان است وقتی پاکت جواب سیتی اسکن ماهان دستش بود و با ساک بزرگ لباس ها و کنه ماهان نشست توی ماشین بابا. از روی صندلی عقب به پاکتی که دستش بود نگاه می کردم و فکر می کردم توی آن یک کاغذ بزرگ است که روی آن درشت نوشته شده شبانه. هنوز هم فکر می کنم داخل تمام پاکت های بزرگ کاغذی است که روی آن نوشته شده، همه چیزهای بد دنیا تقصیر شبانه است. دکتر پرسیده بود تو این دو سال از ارتفا نیفتده؟ زربهی به سرش نخورده؟ مامان ماهان را از روی تخت دکتر برداشت و به من نگاه کرد. سرم را انداختم پایین. روی صندلی کنار بابا نشسته بودم. دیگر کفشای صورتی هم را توی هوا تاب ندادم. دامنم را روی پایم مرتب کردم و دلم خواست از متاب بدوم بیرون. مامان گفت سه روزش که بود از روی پای خواهرش بابا بهش توپید ارتفاعش ده سانتی متر هم نبود سرش از روی زانوی خواهرش که نشسته بود روی زمین آروم افتاد دکتر گفت: نه منظورم ضربه های محکمه مثلا سقوط از جایی شما خودتون در دوران بارداری بیماری خاصی نداشتین نه تو نوزادی تب شدید نکرده تشنج نداشته. تب کرده بود همون روزی که گیشا رو زدن میتونه خاطر همین باشه تو خونواده کسی عقبموندگی ذهنی نداره اقبماندگی این کلمه در هوا یخ زد و خشک شد و تا همیشه ماند دکتر گفت باید از سر ماهان عکس بگیریم جنگ بود و گرم بود و هیچ بیمارستانی از ماهان عکس نمیگرفت ماهان مات با چشم های روی صندلی جلو توی بغل مامان ولو می شد. من توی صندلی عقب فرو می رفتم و به ماهان نگاه می کردم و همانطور که مامان گفته بود صدایم در نمی آمد. بابا از توی کیف کپنهایش کپن در می آورد و بنزین می زد و از این بیمارستان به آن بیمارستان می رفتیم. بابا جلو می و به خانوم های پشت اتاقک های التماس می کرد. مامان ماهان را بغل میگرفت و در راه راهرو بیمارستان ها لای آدمهایی که فریاد میزدند راه میرفت. کفش ماهان پایین مانتو سیاه مامان را خاکی میکرد و هیچکس حواسش به من نبود که سوزی را سفت بغل کرده بودم و تون تون دنبالشان میدهیدم. آخرش یک روز آفتاب که رفت عکس را گرفتیم توی یک بیمارستان خاکستری پر از مرد ریشو که پرستارش بد اخلاق. شب که روی تختم خوابیده بودم صدای مامان رو از اتاقشان شنیدم که به بابا گفت اگه تقصیر شبانه باشه توی اکس معلوم میشه و من رفتم توی حال و تا صبح به پاکت جواب که روی میز بود نگاه کردم فکر کردم ببرم بیاندازمش در خرابه پشت خانه فکر کردم و فکر کردم و هرچه شام خورده بودم بالا آوردم و تب کردم فردایش که رفتیم بیمارستان بابام مرا بغل کرده بود و مامان ماهان را. از تاکسی که پیاده می شوم، آسمان نارنجی غروب پاییز را ته کوچه لیلا می بینم که ابرهای بنفش گرفتش کردند و دلم باز می شود. لیلا جوری بازوغ توی آیفون میگوید بله انگار هنوز سال دوم دانشگاهیمو و می ساق بعد از کلاس کنار پله های جلوی کتابخانه صدایش کرده. هنوز روی پله اول بودیم که گفت، خیلی خوب ساز می زنیم. ساز زدنش را در آمفیتاعت شنیده بود. کانون فیلم را شامون گذاشته بود و رجا من و لیلا را همراه خودش برده بود. زودتر رفته بودیم توی آمفیتاعت تا رجا پروژکتورا چک کند. لیلا چشمش خورده بود به پیانو رویال گوشه سالونو و نشسته بود پشتش، میساق که آمده بود برای تست صدا ایستاده بود وسط راه رو بین سندلی ها و تا ساز زدن لیلا تمام نشد نگذاشت کسی صدا پخش کند. میساق با لبخند از پایین پله های جلوی کتابخانه به من و روجا نگاه کرد که مثل بادیگارد دو طرف لیلا ایستاده بودیم و گفت. روجا نگفته بود دوست نوازنده داره؟ مدت ها بود نشنده بودم کسی به این خوبی آنا مگدلنای باخو بزنه. نفهمیدم لیلا خجالت کشید یا از خوشحالی بود که لبهایش آنقدر سرخ شد میساق روبه او فقط روبه خودش گفت ما چهارشنبه اصرا با چند تا از بچه های سنفی تو آمفیتاتر جمع میشیم برنامه داستانخونی داریم اگه شما هم دوست داریم با رجا و دوستتون بیاین. خوشحال ما میکنید میساخ که رفت دنبال لیلا دویدیم توی اولین کلاس خالی و نگاهش کردیم که همه یه خون بدنش آمده بود توی صورتش و مثل خلها دور سندلی راه میرفت. رجا بلند بلند بهش میخندید. به من نشانش میداد و میگفت خول شده. ببین؟ خل خل. یاد بگیر هیچ وقت از این بلاها سر خودت نیاری. کسی در طبقه اول با صدای بلند میخندد. میروم بالا. یک آلمه از برکای فیکوس بزرگی که برای لیلا خریدم و هم توی پاگرد روی زمین رخته در را باز میکنن میگویم تو باز به این بیچاره آب ندادی؟ ای وای ببخشید باید یادم بندازی شبانه بیا تو صد بار گفتم که من بلد نیستم از اینو مواظبت موازبت کنم برشتار ببر یادت میندازم بذر اینجا بمونه وقتی میخوای بیای خونه رویت خوب میکنه روحیاش خوب است از پیراهن قرمزی که پوشیده و موهای روشنش که ریخته روی شانه ها پیداست از خانه که برق میزند. از اینکه همه چیز سر جایش است از گل سرخی که روی میز گذاشته از اینکه پنجره ها را باز کرده و با همه چراغ ها روشن است خیلی وقت از خانهش این همه چراغ سالم با هم نداشته تنها جای به هم ریخته روی میز است که پر است از کیسه های خرید لیلا با پیراهن قرمزش میچرخد توی خانه و تون, تون چیزهایی را که خریده میگذارد روی کابینت همه چیز را منظم و با سلیقه میچیند چقدر شبیه قبل شده شبیه وقتی خوب بود میپرسم لامپار خودت عوض کردی؟ چقدر خرید کردی برای چند نفر آدم؟ میچرخد و باد میپیچد لای موها و پیراهنش آخه مهمون دارم بعد از این همه وقت و چشمهایش برق میزند میگوید تو دست بر نمیداری از این کوله چند بار بگم این کیف برای سنتو مناسب نیست مثل خانوما یه کیف شیک دست بگه آپندونه گرفتم بریزم برات بیا کارمونو شروع کنیم من بازو برگردم خونه اوضاع خونه خوب نیست چرا گفتم خوب نیست؟ گفتنش چه فایده دارد وقتی اوضاع خانه ما همیشه خوب نیست لیلا لیوان آب هندوانه را می روی میز و یکی از کیسه ها را باز می کند. منتو را می اندازم روی دسته موبل های قرمزش. خانه آنقدر مرتب است که مانتو من روی مبل به همش ریخته. نگاهم می به گوشه دیوار. در پیانو باز است. از خوشحالی نفس هم در سینه هم زندانی می شود. از سمستان گذشته صدای پیانو زدن لیلا را نشنیدم. می گویم داری دوباره پیانو میزنی؟ باز چیزی توی چشمهایش برق میزند یک مش پرنده ریزند ریزن که بالا و پایین میپرند میگوید خیلی برام سخت بود شبانه اما هرطوری بود بازش کردم ببینم میتونم دوباره بزنم یا نه فکر کنم میخواد سینک را پر از آب میکند و بسته ی قارش را باز میکند توی آن. برسلم گفتی فردا شب بیاد؟ میروم کنارش قارچه ها را یکی یکی از آب در می آورد و زیر لب آهنگ آشنایی را می خاند. هر چه فکر می کنم یادم نمی آید چیست. می گویم بده من با اسکاش بشورم. نگفتی به نه؟ چرا نگفتی؟ نمی دونم لیلا. من فکر می شاید بخوام بهش بگم نه. شبانه بگو بیاد. بخوای بگی نه مهمونی آوردنش هیچ اشکالی نداره. کمترین ترین اینه که اخلاقشو توی اخلا اسان چرا هیچ وقت به هیچ کس نشونش نمیدی؟ روی سفیدی قارچ ها اسکاچ میکشم و جاری شدن سردی آب روی پوست دستم آرامم میکند. میگوید مرغا رو بزرم توی فریزر؟ نه، تو بیا اینا رو به من رو خورد میکنم. میدونی، دوست ندارم ارسلان رو به کسی نشون بدم. همش میترسم توی جمع کاری کنه آبرون بره. رفتار ارسلان که توی جمع خیلی خوبه. اون شب که رفتیم فرساد معلوم بود چقدر خوش برخورد و گرمه و با اون چقدر خوش میگذره. یاد دیز چقدر خندیدیم بس که سر به سر روجا گذاشت؟ اسکاش را میدهم دستش و دستاییم را خشک میکنم. باز همان آهنگ آشنا را میخواند. غمگی نیست اما نمیدانم چرا از شنیدنش دلم میگیرد. میگویم خسته شدم لیلا. کاش هیچ نیومده بود. صورتم داغ می شود و چیزی از دلم می جوشد و چشمهایم را خیس می کند همش دارم حرف بد می زنم و حال لیلا را بد می کنم عشقایم توی چشم نمی نگاه نگاهم را از لیلا می دستم. از زیر سینک یک پیاز برمیدارم و پوست می کنم خوردش می کنم و با خیال راحت اشک می ریزم باید تکلیف همه چیز را معلوم کنم همین امروز باید تمامش کنم دیگر بس است دستمال را برمیدارم و میگویم به هیچ چیز مطمئن نیستم از اولشم نبودم حتی هفته پیش که با مادرش اومد خونمون اونا همه خوشحال بودم به جز من شک داشتم مامانم خوشحال بود اون روز باورت میشه؟ حتی مامان حتما چیزی هست که نمیذاره من خوشحال باشم یه چیز بد یه چیز غلط که نمیدونم چیه تو اون وقتا خوشحال بودی یادمه من؟ آره خیلی خوشحال بودم. شیر آب را بندد لعنت به من. چرا او را یاد میساق انداختم؟ تازه دارد یادش می رود دارد دوباره خوب میشود. دیگر مدام درباره میساق حرف نمیزند و هیچ چیز از میساق در خانه نیست. نه دمپایی‌هایش دم, دم در است و نه کلاه فرانسویش به بجانب لباس سیاویزن است. عکسهایش را هم از همه جای خانه جمع کرده. دستمال را روی چشمم فشار می دهم و به لیلا نگاه میکنم که او هم دارد چشمش را پاک می کند. میگوید پیازش تنده. پیازها را می ریزم توی تابه و فله مرغ را میگذارم روی تخته. لیلا می آید رو می ایستد. منتظر است حرف بزنم. باید با او حرف بزنم. میگویم این آخریش بود. آخرین شانسم. فکر میکردم یه جور هیجان انگیز یه جور خیلی آشغانه عروسی میکنم و بعدش دیگه همه بدی ها تموم میشن همه چیز درست میشه و زندگیم از این وز در میاد اما اینطوری هیچ چیز درست نمیشه تا اگه بدتر نشه میشه ماهان نباشم چطور زندگی کنه با مامان ارسلان اخلاق بد داره؟ عذیتت میکنه؟ نه ولی خوبم نیست لجباز و مغرور، هیچ آرزوی بزرگی نمیکنه. هیچ خلاقیتی برای زندگی کردن نداره. زندگیش صد سال دیگه هم همینه. هر روزش مثل همه اصلا متوجه نیست بعد یه چیزیو عوض کنه. دوست داشتم بشینیم با هم کتاب بخونیم، دربارهش حرف بزنیم، فیلم ببینیم، اصلا نصف شب بریم یوش خونه نیما رو ببینیم و برگردیم. ولی ارسلان اهل این کارا نیست. همش دوست داره مسخر بازی در بیاره رو برنامه لوس دست جمعی بریزه بره فرحزاد بره شمال از تو شب قلیون بکشه و بخوابه نمیدونم وقتی میخواد فکر کنه به چی فکر میکنه معمولیه میفهمی؟ معمولی بودن بده در یخچال را باز میکند و برای خودش آب میریزد آرام میگوید معمولی بودن بد نیست خوبه همین خوبه که روزاش شبیه همه میدونی فردا کجاست و پس فردا و ده سال دیگه کتاب نمیخونه اما بهجاش پاش روی زمینه نمیره از پیشت لیوان را میگذارد روی تو آه میکشد قمگینش کردهام باید بروم خانه اینطوری نه باید کاری کنم که باز خوب شود بعد بروم میگویم قارچها رو خورد میکنی دیگه بزرگ شدیم شبانه دوره آرزوهای بزرگ و شادیای عجیب غریبمون گذشته به نظر زندگی بعد چطوری باشه. همش یه موش چیز کوچیک معمولیه. اگه قرار باشه خوشحال باشیم، باید با همینو خوشحال باشیم. پیازها رو هم میزنم و فیله های خرد شده را روی‌شون می‌ریزم. روزنامه چه خبر؟ روزنامه خوبه، خیلی خوبه. دارم از حالت میبینم همین یه بسته رو خریدی؟ کم میاد. الان میرم میگیرم. رو می روزا گفت شاید اس بیاد، میگم سر را بگیره. گفت میاد؟ کاش بیاد آخرش نفهمیدیم امروز چشم بود حواسم به لیلاست که زیر کتری را روشن می کند زرچوبه را از توی کابینت بر می و می ریزم روی فیلهها. ها شله را کم می کنم و در قابلمه را می گذارم لیلا پودر جله صورتی را خالی می کند توی کاسه حتما خوب است که می ژله درست کند می منم نفهمیدم از چی ناراحت بود صبح گفتم بیا اینجا گفت نمیدونم میتونم یا نه. سرحال نبود. فکرم سرکار چیزی شده. چیزی شده بود میگفت به من. اومد شرکت اما زود رفت. گفت چند تا کار داره. نگفت چیکار. جنبان ها را میگذارم روی تخته و زور میزنم تا شیشه خیارشور را باز کنم. نمیشود. میگیرم ای سمت لیلا که دارد آب جوش خالی میکند توی کاسه ژله میتونی اینو باز کنی زور نمیتواند میگوید صبر کن بیاد میگم بازش کنه موبایلش را بر می دارد و شماره می گیرد روی ژله آب سرد می رزم و میگذارمش توی یخچال میگوید بر نمی داره تا تو را خورد کنی میرم قارچ می گیرم شیشنم بدم رحمان باز کنه مانتای تو رو بپوشم منتظر جوابم نمی ماند میپوشدش چقدر بزرگ است برایش دم در برمیگردد و نگاه هم نگاهش هزار سال طول میکشد بعد میگوید تنهایی خیلی سخت شوبانه سخت از زندگی بیرویاست آدم همیشه توی ابراز زندگی نمیکنه کم کم میاد پایین اون وقت تنهایی از همه چیز سختتر میشه میفهمی در را میبندد و بیرون میرود نمیفهمم زندگی همه جورایی سخت است هر روز سختتر از روز قبل دارم توی ابرها زندگی میکنم. مالی خولیایی شدم. همین کتابها مالی خولیاییم کردن میدانم. همین کتابها که پر از قهرمان هستند. قهرمان های سمی. قهرمان هایی که هی توی ذهنم به هم بافتمشان و بزرگ و کوچکشان کردم و بالا و پاینشان کردم و آخرش یک قهرمان برای خودم ساختم که هیچ جا پیدا نمی شود. دیگر هیچ هیچکس اسب سوار نمی شود که من بروم کنار چادر دهنه اسبش را بگیرم برایش چای داغ بریزم و به حرفهایش گوش کنم. هیچکس خسته و خونی از مبارزه با آدم های بد پیش زنش بر نمی گردد. هیچکس مشروبش را از هیچ قعه دوری از دست هیچ اجدهایی نجات نمی دهد. هیچ هیچکس رستم و آرش و پوریا نیست. چرا این قهرمان ها دست از سر من بر نمیدارند چرا نمیگذارن از ابرها پایین بیایم اون پایم را بگذارم در زندگی واقعی چرا مالی خولیایی هم می کنند؟ این ارسلان هم که زنگ نمیزند؟ باز چیزی در دلم خودش را به در و دیوار میکوبد نکند دوباره قهر کرده باید خودم به بهش زنگ بزنم لیلا راست میگوید؟ تنهایی سخت است برای لیلا هم سخت است هرقدر که کار خوب باشد و زندگی خوب باشد و روزنامه خوب باشد باز هم تنهایی سخت است. سخت است که تشکش را روی زمین پهن کرده و روی تختشان نمی از لای در اتاقش پیداست. رختخاب را از روی زمین برداشتم و گفتم کمرت درد میکنه که روی زمین خوابیدی؟ نشست روی تخت و زد زیر گریه. روجای یک دستمال دستش داد و گفت بیا به حرف من گوش کن. این تخت کوفتی رو بنداز دور. نمیتونم. پس بذارش تو انبار تا اینقدر جلوی چشت نباشه. خدازاری داری تو؟ آهنگی که لیلا میخوان توی سرم صدا میکند. یادم آمد شد. بود. قطعه بود که برای برنامه انجامن سنفی تمرین میکرد. میساغ آن سال رئیس انجامن بود. لیلا صبح اجرا داشت و میترسید. میساغ گفته بود بیاییم و تا صبح کنارشان بمانیم. رجا گفته بود رامین نیست و مادرش تنهاست و نمیآید. من روی مبل قرمز نشسته بودم و پتورا روی خودم کشیده بودم و هرچه گوش می دادم کجای آهنگ خوب است کجایش بد اما می تا صبح کنار صندلی پیانو نشست روی زمین و هزار بار با دقت گوش کرد که لیلا چه می و هزار بار از ساز زدنش تعریف کرد و گفت کجا را بهتر است آرامتر بزند و کجا را قوی تر تا هوا روشن شد صدای کلید میآید: لیلاست قارچ و خریده دستای جنبانیم را آب میزنم و شیشه خیارشور را از او می گیرم. میگوید هر چه که قبلش لیست بنویسی و مرورش کنی باز یه چیزی از یاد آدم میره مایونز زیادم رفته بود روجا زنگ زد گفت الان یه سر میاد اینجا ارسلام به من زنگ نزد خودت زنگ بزن بعدش هم بگو فردا شب بیاد چقدر مطمئن میگوید زنگ بزنم و بگویم بیاید مانتوم را میگذارد روی صندلی و قارچها را میریزد توی سینگ. موبایلم را از کوله در میآورم و باز تحو میگیرم آب را باز می کند و میگوید: زنگ بزن شبانه. شبانه؟ مینششینم روی دسته مبل شمارش را می گیرم. یک بوق که میخوررد گوشی را برمیدارد. چه عجب؟ دو ساعت منتظرتم؟ تهوت تمام می شود. دست را میکشم به تیزی برگ گل سرخ تازهی که روی میز است. منتظرم بودی؟ معلومه؟ چه خبر بیام دنبالت؟ نه اومدم پیش لیلا بد اخلاق می شود پس بگو چرا خبری ازت نیست ساکت می شود شبانه دیگر که من نیستم می روی دلم و نمی حرف بزنم بلند می شوم لیلا می آید روبرویم می ایستد بی صدا می گوید گفتی؟ سرم را بالا با می اندازم ارسلان می گوید باشه به کارت برس لیلا دستش را سمتم میگیرد. خنگ میشه و, و گوشی هم را میده هم دستش. سلام ارسلام. خوبی؟ میخواستم بگم فردا شب با چند از بچه ها خونیم و دوره هم جمع میشیم. تو هم بیای خوشحال میشم. نه خواهش میکنم. با شبانه کاری نداری؟ باشه میبینمت قطع میکند و تلفن را میگذارد روی میز. میگوید دیدی تموم شد. گفت میاد. آره چرا نیاد؟ چی دوست داره براش درست کنیم؟ ارسلان؟ نمیدونم داشتم فکر میکردم خب خودش کتاب نمیخونه اما هیچ وقت به من نمیگه تو هم کتاب نخون این خوبه دیگه؟ تازه مگه خودم چی هستم؟ من هم یادم معمولی بی هیجانم مثل بقیه اصلا تو میتونی بفهمی تفاهم داشتم و سر سری چیزای کوچیک باشه یا بزرگ من هر چی فکر میکنم نمیفهمم نگاه میکند میفهمد. معلوم است که میفهمد میگوید اینقدر خودتو تو اذیت نکن شبانه هیچکس نمیتونه تو مجبور به کاری کنه که دوست نداری بز فردا شب بیاد بعد دوباره دربارش حرف میزنی اصلا میخوای زنگ بزنم بری پیش مشاور من صدای زنگ میآید لیلا بلند میشود روجاس نمیخوام پیش روانشناس لیلا بروم میخوام همه چیز همین امشب تمام شود از بلا تکلیفی خسته شدم از ترسویی از بیورزگی از اینکه همیشه همه چیز تقصیر من است از اینکه نمیتوانم مثل همه آدمهای دیگر راحت برای خودم تصمیم بگیرم کاش مادام دوپاری بودم لویی پانزدهم میآمد و با من ازدواج می کرد. شاه بود و مجبور بودم اطاعت کنم شاه بود و هیچ کس نمیتوانست روی حرفش حرف بزند حتی خودم روجا دستش را میگیرد به چارچوب در و می ازدد. نمی شناسمش لباسهایش خاکی است زیر چشم‌هایش دو حلقه سیاه هست که هیچ وقت نبود رنگش پریده و نماتیکش روی لبش است نه ریمل زده انگار از گربه ترسیده صبح حالش بهتر بود بلند می‌شوم همان دمه در ای را که دستش است میدهد به لیلا این بادمجون جون کبابیا رو مامان داد گفت کجا و ادویه زدم فقط چهار تا تخم مرغ بندازی توش میشه میرزا قاسمی روم می‌کند به من شما دوتا با هم یه خیاشو رو نمیتونین باز کنین؟ میخندد. اما خندهش نمیماند و یک لحظه بعد توی صورتش گمش میکنم. لیلا میگوید چرا گذاشتی غذا درست کنه با این کمر درد؟ زنگی زنم تشکر میکنم. خوبی تو؟ چه شده هیچی. پس این چه غیافه ایه؟ بیا تو. نه باید برم. چطوری شبانه؟ مات میروم جلو. نگاه میکنم توی چشمهایش که نگاه ندارند. اگر گریه میکرد، اگر فقط کمی گریه میکرد، فشار عشقا دور چشمهایش را اینطور کبود نمیکرد. روجان نباید بد باشد تا به همیشه مواظب به من و لیلا باشد. میگوید چه خبر؟ هیچی، چرا انقدر زود میری؟ کار دارم. لیلا میگوید یه دقیقه بیا بشین، دلم هزار را رفت. باز دلت کجا رفت؟ چیزی نشده که فقط خستم فکر کنم دارم مریض میشم هوا سرد شده تو میمونی شبانه دیره بیا سره را برسونمت باید بروم خانه ماهان تنهاست وقتی من نیستم میترسد مینشینم توی ماشین رجا و کلم را بغل میکنم روشن که میکند صدای موسیقیش مثل همیشه بلند نمیشود از حال امروزش میترسم و توی خودم می میشوم راه میافتد و باد خنک اول شب پاییز میپیچد توی ماشین. چراغ قرمز را که رد می‌کند میگوید: باز چیکار کردی با ارسلان؟ هیچی بابا خودش با من دعوا کرد. لیلا بهت گفت نه خودش زنگ زد. شبانه همه ی حق با اونه. نمی تونی این اینجوری پا در هوا نگهش داری. چرا باز به روجا زنگ زده؟ خجالت میکشم و به کفشای کثیفم نگاه میکنم که مثل همیشه یادم رفته تمیزشان کنم ارسلان رعایت هیچ چیز را نمیکنن آبروی روی آدم را با این کارهایش میبرد. میگویم نمیخوام تا در هوا نگهش دارم باور کن خودم بیشتر از همه خسته شدم میدونم و تمومش کنم فقط هرچی فکر میکنم میبینم یه ذرم دوستش ندارم آدم عاشق همه زندگیشون اینطور میشه. می یادته اینقدر خوب بود انقدر مهربون بود انقدر لیلا رو دوست داشت حواسش به همه چیز بود آخرش چی شد گذاشت رفت و لیلا به این روز افتاد تازه اونا بلد بودن زندگی کنه اما ما بلد نیستیم ارسلان مثل میساق نیست نصف اون عاطفه نداره نمیتونه محبت کنه منم شریطم مثل لیلا نیست هزار تا دا بدبختی دارم مامان ماها بی ارزگی خودم وقتی زندگی لیلا اینطور خراب شد معلومه که مال من درست نمیشه آخرش یه چیزی میشم بدتر لیلا. مشکلت اینه شبانه؟ میترسی مثل لیلا بشی؟ کولم را سفتتر بغل می کنم و رویم را میکنم به پنجره. یکی از مشکلام اینه؟ میخوای بگم لیلا چرا نرفت؟ اگه بگم تمومش می رو میکنم کنم به روجا راهنما میزند و میپیچد. نگاه هم نمی کند. لیلا چرا نرفته؟ فکر می تمام صحنه های زندگی لیلا با هم مثل فیلمی که روی دور تند باشد از جلوی هایم رد میشوند. نمیفهمم. مغزم کار نمیکند. میپرسم چیزی هست که من نمیدونم؟ لیلا میخواست بره اما نتونست. وقتی میساح کاراش درست شد و لیلا دید انگار واقعا داره میره تصمیم گرفت همراهش بره. اما دیگه دیر شده بود. هر کاری که از دستش برمیومد کرد. اما اون وقت سال هیچ جا بهش پذیرش نمیداد. اینارم به هیچ کس نگفت. حتی به میساق. خشک شدم. نگاهم هم می کند. هیچ چیز در چشمهایش نیست. آرام میپرسم تو از کجا می دونی؟ میساق با من حرف میزد. روزای آخر نامه های درخواست و جوابشونو توی کامپیوتر لیلا دیده بود. تا وقتی هم رفت هیچ کدوم به روی هم نیاوردن. رجا جلوی در خانه ما نگه میدارد میگویم؟ پس چرا نموند میساق آدم موندن نبود جوانه کلی آرزوی بزرگ داشت لیلا هم بهش نگفت میخواد بره میخواست میساق به خاطر اون بمونه لیلا بعد زودتر تصمیمشو میگرفت باید همون اول کمک میخواست از میساق اون وقت شاید میتونست بره هی میگفت نمیره بدون من لچ کرده بود با خودش پاشا کرده بود توی کفش و میگفت چون من نمیخوام برم اونم نباید بره یادت نیست فقط دنبال این به خودش ای ثابت کنه میساق چقدر دوستش داره مازو خیسم داشت سن میخواست خودشو عذاب بده همرم با خودش عذاب بده بعدش هم گیر داد به اینکه میساق نخواسته من برم وقتی هم قرار شد در نگرده لیلا راضی شد به جدایی تو که دیگه میدونی میساق دوستش داشت یه تا چی چیکار کرد برای بردنش و هر کاری کرد لیلا راضی نشد با اون بره لیلا راهی باقی نذاشته بود منتظر روز فرودگاه بود تا میساق از رفتن پشیمون بشه و برگرده خونه و بگه بدون تو هیچ جا نمیرم دیوانه بود روی ابراز زندگی میکرد. روزای آخر میساق دیگه وقتی نداشت. باید به این آرزوهاش و لیلا یکیو انتخاب میکرد. خیلی بدبختی کشیده بود برای کارای رفتنش. میفهمی؟ تو بودی نمیرفتی؟ به جای اینکه نگاه هم کند آه میکشد و این یعنی منتظر جواب نیست. زندگی لیلا توی مغزم به هم میریزد. تکه تکه میشود و هر تکهش مثل نقشه اوتوکد اکسپلور میشود توی صفحه سیاه. دیگر لیلا رو شناسم. ماشین را خاموش میکنه و میگوید. ارسلان پسر بدی نیست مثل همه آدمای دیگه است یه خوبیایی داره یه بدیایی تنها چیزی که مهمه اینه که دوسش داشته باشی تا بتونی تحملش کنی من فکر میکنم داری اما خودت یه بار برای همیشه بشین بهش فکر کن و جوابشو زودتر بده اگه نخواستی هم مهم نیست از هیچی چی نترس من و لیلام همیشه پشت میمونیم هممون کنار هم پیر میشیم، نمیذاریم تنها بمونی سرش را میاندازد پایین میخواهم بگویم، تو که نیستی، میریه منو تنها میذاری نمیگویم میگوید ما دخترای ناقصال هستیم شبانه از زندگی مادرامون در اومدیم و به زندگی دختریمون نرسیدیم قلبمون مال گذشته است، مغزمون مال آینده هر کدومم اونقدر ما رو از دو طرف میکشند تا دو تیکه بشیم اگه ناقص نبودیم الان هر ستمو نشسته بودیم تو خونه رو بزرگ کردیم. همه عشق و هدف و آیندهمون بچه‌هامون بودن. مثل همه زنایی توی تاریخ و اینقدر دنبال چیزای عجیب و بی ربط نمی‌دویدیم. لیلا هم مثل آدم سرشو انداخته بود پایین و دنبال شوهرش رفته بود. منم اینقدر عذاب نمیدادم خودم خودمو با قرض و پول و کار و بدبختی. با خیال راحت می‌موندم همینجا و زندگیمو میکردم. تو هم شوهر بچه داشتی و خوشحال بودی. به جای مادر ماهان بودن مادر بچه خودت می شدی آخر هفتهام هم همه با هم میرفتیم آراشگاه اخون رو درست می کرد و به جای لذت های دور و سخت از مهمون شبانه و خرید لباس ابریشمی تو هراجی لذت می بردیم همین گلی رو ببین فکر می کنی زندگیش بده با اون شوهر بازاری بهش بد میگذره بد نمیگذره شبانه. هر وقت که نخواد دیگه نمیاد سر کار بدون اینکه نگران چیزی باشه همیشه لباساش نوع و تمام به ما رو ببین یه نگاه به خودت بنداز تو بیست و ساله ای؟ تو جذابیت بیست و ساله ها رو داری؟ موهات صورتت سرووزت به جای که به زندگیت فکر کنی هی داری فکر میکنی به ماهان و مامان تو زندگی لیلا و رویاهای عجیب غریبت صدایی از دور می آید شبا بیا بالا را نگاه میکنم ماهان سرش را از پنجره آورده بیرون و صدایم می میکند. روجا پیاده میشود و برای ماهان دست تکان میدهد. ماهان برایش بوس میفرستد. حتما مامان آرام شده که ماهان سر حال است. روجا میگوید: "برو شبانه. شاد فردا روز بهتری باشه." صدایم به زور در میآید برای گفتن خداحافظ. گاز میدهد و میرود. سنگین شدهام. انگار دنیا با همه وزنش درست روی سینه من افتاده خود سنگینم، خود بی ارزم، خود همیشه شکست خوردم را از پله ها میکشم بالا باید تمامش کنم، همین امشب باید تمامش کنم ماهان می‌آید دم در، کولم را می گیرد و مرا قایم می کند لای بازوهای بزرگش کاش ارسلان هم بازوهایی به این بزرگی داشت برای قایم شدن. میروم تو. سلام می کنم. بابا همینطور که سرش توی کتاب شعرش هست جوابم را میدهد. مامان روی مبل نشسته و پیشانیش را با کف دستش گرفته. دارم خفه می شوم. بغضم را محکم قرت می دهم و میگویم مامان... زعی میزنی به مامان ارسلان قرار بذاری بگو من موافقم بابا کتابش را میبندد و عینکش را روی آن میگذارد مامان دستش را از روی پیشانی بر میدارد و میگوید من بدون تو چیکار کار کنم با این بچه مریض؟